یا ربز قبول برزدم باز رهان، مشغول خودت کنز خودم باز رهان، تا هوشیارم ز نیک و بد می مستم کن و از نیک و بدم باز رهان. زین گردیده و دفعالی بین، و از رفتن دوستان جهان خالی بین، تابتبانی تو یک نفس خود را باش، بردامن گهده ای مطلب آلی بین. چون حاصل آدمی در این چورستان، جز خوردن قصه نیست یا کندن جان، خورم آن که از جهان زود بره، آسوده کسی که خود نیامد به جهان. بر موجب عقل زندگانی کردن، شاید کردن ولی ندانی کردن، استادت روزگار شابک دست است، چندان به سرت زند که دانی کردن.